اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اینا فتحنا لکه فتحا مبینا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم. ليغفِر لک الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر و نعمته عليك و يتم نعمته عليك و يهديك صراطا مستقیما. تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای که به تو نسبت می‌دادند ببخشد. و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید و و پیروزی شکست ناپذیری نصیب تو کند هو الَّذِي أَنْزَلَ ف فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لی ازدادو ایمانم معا ایمانهم ولله جنود السماوات والارب و کان الله علیما حکیما او کسیست که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند لشکریان آسمان ها و زمین آن خداست و خداوند داناب و حکیم است يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما هدف این بود که مردان و زنان با ایمان را در هایی از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختانش جاری است در حالی که جاودانه در آن می‌مانند و گناهانشان را میبخشد و این نزد خدا رستگاری بزرگی است وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنِّينَ الظَّنِّينَ بِاللَّهِ ظنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ و, نصيرا. و نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می برند مجازات کند آری حوادث ناگواری که برای مؤمنان انتظار می کشند تنها بر خودشان نازل می شود خداوند بر آنان قذب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را برای آنان آماده کرده و چه بد سرانجامی است وللله جنود السماوات وكان الله عزيزا حكيما لشکریان آسمان ها و زمین تنها عزان خداست خداست و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بيقين ما ترا گواه و بشارت دهنده و بین دهنده فرستادیم لیتؤمنو بالله و رسوله وتعزروه وتوقروه وتوقروه وتسبحوه و تعزروه و توقروه و تا شما مردم به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را بزرگ دارید و خدا را صبح و شام تسبیح گویید این‌الذین یوبایعون که ما الله يد الله فوق ایدیم فمن کثف این ما ینکث ومن آوفا بی عاهد عليه الله فسي يأتيه کسانی که با تو بیعت میکنند در حقیقت تنها با خدا بیعت مینمایند و دست خدا بالای دست آنهاست پس هر کس پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان شکسته است و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا كند بزودی پاداش عظیمی به او خواهد داد سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا شغلتنا اموالنا و لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا زودی بازماندگان از اعراب بادی نشین عذر تراشی کرده میگویند حفظ اموال و خانواده های ما ما را به خود مشغول داشت و نتوانستیم در سفر تو را همراهی کنیم برای ما طلب آمرزش کن آنها به زبان خود چیزی میگویند که در دل ندارند بگو چه کسی میتواند در برابر خداوند از شما دفاع کند هرگاه زیانی برای شما بخواهد و یا اگر نفعی اراده کند، مانع گردد و خداوند به همه کارهایی که انجام میدهید آگاه هست بل ظننتم اللین قلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا و ذلك فی قلوبكم و زین ذلك في قلوبكم و ظن السوء و قوم بورا ولی شما گمان کردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت و این پندار غلط در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد کردید و سرانجام حلاک شدید و من لم یؤمن بالله و رسوله فا انا اعتدنا, أعتدنا للكافرین سعیرا آن کس که به خدا و پیام ایمان نیاورده سرنوشتش دوزخ است چرا که ما برای کافران آتش فروزان آماده کرده ایم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین ازان خداست هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و هر کس را بخواهد مجازات می کند وخداوند آمرزنده و رحیم است. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بَلْ كَانُوا لا يفقهون إلا قليلا. هنگامی که شما برای به دست آوردن قناعی می حرکت کنید بازماندگان میگویند گویند بگذارید ما هم در پی شما بیاییم آنها میخواهند خواهند کلام خدا را تغییر دهند بگو هرگز نباید به دنبال ما بیایید این گونه خداوند از قبل گفته است آنها به زودی میگویند شما نسبت به ما حسد می‌ورزید ولی آنها جز اندکی نمیفهمند. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم تقاتلونهم یسلمون ف تطیعوا و تیقوم الله اجررا حسن واین تتول كما تولتون قابلعددي بقومدبا علیما به بازمانگان از اعراب بگو به زودی از شما دعوت می شود که به سوی قومی نیرومند و, و جنگجو بروید و با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند. اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما میدهد و اگر سرپیچی نمایید همان گونه که در گذشته نیز سرپیچی کردید شما را با عذاب درد ناکی کیفر میدهد. لیس علی حرج ولا علی ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما برنابی نابل لانج بر نیست اگر در میدان جهاد شرکت نکنند و هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید او را در باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و آن کس که سرپیچی کند او را به عذاب دردناکی گرفتار میسازد لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فانزل عليهم وآثابهم فتحا قريبا خداوند از مؤمنان هنگامی که در زیر آن درخت باط بیعت کردند راضی و خشنود شد خدا آن را در درون دلهایشان از ایمان و صداقت نهفته بود میدانست. از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود و مغانم کثیرت و کان الله عزیزا حکیما و همچنین عناهیم بسیاری که آن را به دست می آورید و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. وعده الله مغایم کثیره تن تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وکف الناس عنكم ولتكون و, و خداوند قنایم فراوانی به شما وعده داده بود که آنها را به دست می آبرید ولی این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت و دست تعدی مردم دشمنان را از شما باز داشت تا نشانه برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند و اخرا لم تقدر عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير و نیز قنایم و فتوحات دیگری نصیبتان میکند که شما توانایی آن را ندارید ولی قدرت خدا به آن احاطه دارد و خداوند بر همه چیز تواناست وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَلَّهُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِلُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا و اگر کافران در سرزمین هدیبیه با شما پیکار میکردند کردند به زودی فرار میکردند. کردند سپس ولی و یاوری نمی یافتند سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنت الله تبلیلا این سنت الهی است در گذشته نیز بوده است و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت وهو الذی كف أیدیهم عنكم وأیدیكم عنهم ببطن مكه بیبتیم مکتمین بعدی ان اففررق و معم ووك الله بمت عملون داصرا او کسی است که دست آنها را از شما و دست شما را از آنان در دل مکه کوتاه کرد بعد از آنکه شما را بر آنها پیروز ساخت و خداوند. بانچه انجامی دهید بیناست الذين الّذین کفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا والهدی معکوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فتصيبكم منهم مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا آنها كساني هستند که کافر شدند و شما را از مسجد الحرام و رسیدن قربانی هایتان به قربانگاه باز داشتند و هرگاه مردان و زنان با ایمانی در این میان بدون آگاهی شما زیر دست و پا از بین نمی رفتند که از این راه عیب و آری نا آگاهانه به شما می رسید خداوند هرگز مانع این جنگ نمی شد هدف این بود که خدا هر کس را می خواهد در رحمت خود وارد کند و اگر مؤمنان و کفار در مکه از هم جدا می شدند کافران را عذاب درد ناکی می کردیم. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينةه على رسوله وعلى المؤمنين و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوی احق بها وأهلها و وكان الله بكل شيء علیما به خاطر هنگامی را کافران در دلهای خود خشم و نخوت جاهلیت داشتند و در مقابل خداوند آرامش و سکینه خود را بر فرستاده خیش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت و آنان از هرکس کس شایسته تر و اهل آن بودند و خداوند به همه چیز داناست لاقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا المسجد الحرام ان شاء الله امنين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا خداوند آنچرا به برش در عالم خاب نشان داد راست گفت به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحراب می میشوید در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید ولی خداوند چیزهایی را میدانست که شما نمیدانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. هو الذی ارسل رسوله بالهدا و ودین الحق لیظهره علی الدین كله و وکفى بالله شهیدا او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گوه این موضوع باشد. محمد رسول الله والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فِي وجوههم من أَثَرِ السجود، ذَلِكَ مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزره فاستغلظ فاستوى. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزر و علي يغضبيم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته واجر عظيما محمد فرستاد خداست و كساني كه با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود میبینی در حالی که هموار فضل خدا و رضای او را میتنبند نشانه آنها در صورتشان از اثر سجد نمایان است این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است همانند زراعتی که جوانه های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زار آن را به شگفتی وامیدارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند خداوند وعده آمرزش و عجر عظیمی داده است